سلام و درود به همه شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی کانال افسان خیلی سریع بریم برای شنیدن این داستان زیبا به اسم سرباز کوچک زمانی روزگاری سرباز کوچکی زندگی میکرد که تازه از جنگ برگشته بود جنگ تازه تمام شده بود و این سرباز شجاع صعیح و سالم داشت به خونه برمیگشت حالا بدونید که اسم واقعی سرباز جان بود اما تعدادی از دوستانش همیشه اون رو شاه کوچولو صدا میکردند چرا کسی نمیدونست اما اینطوری بود دیگه اون پدر و مادری نداشت تا ازش استقبال کنند و بهش خوش آمد بگند بنابراین زیاد هم عجله نمیکرد و سلانه سلانه به طرف روستایی خودش میرفت گول پشتیش رو بر پشت انداخته و شمشیرش رو از کمر آویخته بود یک دفعه شبی ویرش گرفت تا چپوقش رو روشن کنه دنبال فندکش گشت اما متوجه شد که اون رو گم کرده انقدر از این اتفاق ناراحت و عصبانی شد که دنبال سنگی میگشت تا اون رو به جایی پرت کنه همون موقع در بین درختان نور درخشانی دید به طرفش رفت و پس از کمی در برابر خودش قصری قدیمی با دروازه از هم گوشوده دید سرباز کوچیک وارد حیات شد از پشت پنجره به داخل نگاه کرد و در انتهای پیشتالار آتشی سوزان دید چپخ رو در جیب گذاشت و به آرامی بردر ضربه زد و معدبانه پرسید ممکنه به من آتیش بدید؟ اما جوابی نیومد جان لحظه صبر کرد و دوباره در زد این بار کمی محکمتر باز هم صدایی به گوش نرسید. چفت رو برداشت و وارد شد. تالار خالی بود. سربازی کوچیک یک راز به طرف آتشتان رفت. انبر رو برداشت. خم شد و دنبال زغالی حسابی گشت تا چپق رو بگیرونه. یک دفعه تیکی شنید. انگار چیزی مثل فنر از جا در رفته باشه. درست در وسط شعله های آتیش، ماری بسیار بزرگ سر برکشید و به صورت سرباز نزدیک شد اما عجیب از خود مار سرش بود که سر یک زن بود. این منظره میتونست هر کسی رو فراری بده اما در سینه سرباز کوچیک با اون قامتش دل یک سرباز واقعی می تپید. اون فقط قدمی به عقب برداشت و دست به قبضگی شمشیرش برد. مار گفت: شمشیرت رو غلاف کن. من منتظرت بودم. چون این تو هستی که باید نجاتم بدی. سرباز گفت. تو کی هستی؟ اون مار گفت. نامم لودوینه. من دختر پادشاه سرزمین های پایین هستم. نجاتم بده. من با تو ازدواج خواهم کرد و تو رو تا پایان عمر خوشبخت می البته شاید خیلی ها از اینکه ماری با سر یک زن اونها رو خوشبخت کنه خوششون نیاد. اما شاه کوچولو حراسی نداشت. علاوه بر این اون شیفته جذابیت چشمان لودوین شد. اون مثل ماری که به پرنده چشم دوخته باشه به جان نگاه میکرد. چشمان اون سبز و زیبا بودند. مثل چشمای گربه گرد نبودند. بلکه کشیده و بادومی بودند. و با روشنایی عجیبی برخ میزدند. گیسوانه طلایی اون که اطراف چشمانش رو پوشونده بودند، درخشندگی زیادی داشت صورتش به سان چهرهی فرشتگان زیبا بود اما اندامش اندام مار بود شاه کوچرو پرسید باید چیکار کنم مار گفت اون در رو باز کن به راهروی میرسی که در انتهاش درست مثل اینجا اتاقی هست از اون اتاق عبور کن بعد به صندوقخانه میرسی که از اونجا باید جامعی زنانه برداری و برام بیاری سربازه کچیک دلیران آماده انجام کار شد. از راهرو به سلامت گذشت. اما وقتی به اتاق رسید، در زیر نور ستارگان هشت مشت گره شده رو بر سطی هموار با صورت خودش دید که اون رو تهدید به کتککاری کاری اون به هر طرف نگاه کرد، اما بدنهایی رو که صاحب اون دستها باشن ندید. سرش رو پایین انداخت، دستاش رو مشت کرد و از بین طوفان زربه ها که بر سر و روش گوبیده می گذشت. وقتی به صندوق رسید درش رو باز کرد و جامع رو برداشت و به اتاق اول بومد. اون که از نفس افتاده بود گفت آوردمش. صدای تیک تیک اومد و یک بار دیگه شعوله از هم باز شدند. لودوین تا کمر ظاهر انسانی پیدا کرد. اون جامه رو گرفت و پوشید. ای بسیار با و و رنگ مخمل نارنجی بود. باروی اون مرواری دوزی شده بود اما مرواریدها به سپیدی گردنش نبودند اون گفت هنوز تموم نشده به راهرو برو چمدونی رو که در سمت چاب قرار داره بردار در اتاق دوم در طبقه اول صندوقخانه دیگری میبینی که دامنم در اونجا قرار داره اون رو برام بیار شاه کوچولو آماده شد تا خاصه اون رو برآورده کنه موقع ورود به اتاق به جای مشتهای گره شده هشت دست قوی دید که هر کدوم چوبی بزرگ و محکم در دست داشتند. فورا شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید و راهش رو از میان اون خشونت خشونتبار باز کرد و بدون اینکه خراشی جدی برداره سالم گذشت. دامن رو آورد. دامنی ابریشمی شمی و برنگ آبی. آبی همچون آسمان اسپانیا. جان گفت آوردمش. مار دوباره ظاهر شد و این بار تا زانوان مثل انسان شده بود. اون گفت حالا فقط کفش و جورابم مونده برو و اونها رو از صندوقخانه طبقه دوم بردار سرباز کوچیک برا افتاد اون با هج غولک روبرو شد که چماغ آهنی به دست داشتن و از چشمانشون آتش میجهید. این بار کمی در آستانه در توقف کرد و به فکر فرو رفت پیش خودش گفت شمشیر هم اینجا به کار نمیاد این پلیدان اون رو چون شیشه‌ای در هم میشکنند. اگر به فکر چاره نباشم کارم ساخته است. در این لحظه چشمانش به در افتاد که از چوب بلوط سنگین و زخیم بود. در رو از لوله هاش در رو و روی سر خودش گرفت. بعد به وسط قولک ها زد که با چماغهای آنی بر سرش می‌کوبیدند. بالاخره به نخره تونست کفش و جراب رو برداره و برای لودوین بیاره. اون فورا اونها رو پوشید و به صورت زن کامل در اومد. وقتی که جراب های عبری شمین و کفش های کوچک آبیرنگ یا قوت نشان رو پوشید به رهاننده خودش گفت حالا باید بری و هر اتفاقی افتاد به اینجا بر نگردی. این دویستکه رو بگیر. امشب در مسافرخانی کنار جنگل بخواب و صبح سود بیدار شو. چون ساعت نه صبح من از اونجا میگذرم و تو رو سواره کالسکم میکنم. سرباز کوچک پرسید چرا حالا نریم؟ جواب داد. چون زمان موعود نرسیده حالا این جام رو بگیر و نوشیدنش رو بنوش در حالی که صحبت میکرد موشابهی رو که مثل طلای قلیز بود در جامی از بلور ناب ریخت جان اون رو نوشید چوبق شو رو روشن کرد و بیرون رفت وقتی که وارد مسافرخونه شد سفارش غذا داد اما همین که پشت میز نشست قبل از اون که چیزی بخوره خوابی عمیق در وجودش رخنه کرد به خودش گفت بیشتر از اونچه که فکر میکردم خسته هستم اون به دار گفت که حتما اون رو سر ساعت هشت صبح بیدار کنند بعد به بستر رفت تمام شب مثل مرده خوابید سر ساعت هشت به بالینش رفتن تا بیدارش کنند اما بیدار نشد هشتانیم صداش کردند بعد یک رو به نو بالایی سرش رفتن و صداش کردند اما باز هم بیدار نشد برای همین اون رو به حال خودش رها کردند تا هر هرچه میخوات بخوابه ساعت دوازده ضربه سد که جان بیدار شد از بستر بیرون پرید خیلی سری لباس پوشید و با عجله پیش پید دار دوید و پرسید آیا کسی سراغش رو نگرفته زن دار جواب داد شاهدختی دوست داشتنی سوار بر کالیسکیهی طلایی سراغت رو گرفت این دست رو برات گذاشت و پیغام داد که فردا صبح هم سر ساعت هشت از اینجا میگذره سرباز کوچیک خودش رو لعنت کرد میکوشید با نگاه به دستگل خودش رو آرام کنه اما اونها گلهای تکمهای بودند سرباز کرد اینها گلهایی یادآور هستند فراموش کرده بود که اون گلها رو برای بهیاد آوردن مردگان میچینند شبکه شد با یک چشم باز خوابید در یک ساعت بیست بار از جا بلند شد وقتی پرندگان ترانه سر دادند دیگه نتونست آروم بمونه از پنجره به شاخه های درختان بزرگ لیمو نگاه کرد از درختی بالا رفت همونجا خوابالود نشست و به دست گل زل زد تا اینکه توان خودش را از دست داد و به خواب رفت باز خوابش برد و هیچ چیز نتونست بیدارش کنه نه تابش خورشید نه تران خانی پرندگان نه سر و صدای طلایی لودوین و نه فریادهای زن مسافرخانه دار که همه جا دنبالش گشته بود ساعت دوازده ضربه زد که بیدار شد از بالای درخت که پایین میومد قلبش به شدت میزد میز غذا رو چیده بودند پرسید آیا شاهدخت اومد؟ زن مسافرخانهدار گفت بله اومد این روسری گلگلی رو برات گذاشت گفت که فردا ساعت هفت از اینجا میگذره اما این آخرین باره سرباز کوچیک با خودش گفت حتما افزون شدم بعد روسری رو که بوی عجیبی میداد برداشت و دور بازوی چپش بست فکر می‌کرد برای اینکه به خواب نره این بهترین کاره صورت حساب رو پرداخت کرد و با پولی که مونده بود اسبی خرید شب که شد سوار اسب شد و کنار در مسافرخونه ایستاد تصمیم گرفت تمام شب رو در اونجا بیدار بمونه هر چند وقت یک بار سرش رو پایین می آورد تا عطر دلنشین روسری رو که دور بازش بسته بود بو بکشه به تدریج با بو کشیدن پدرپی پی سرش به پایین خم شد و برگردن اسب عصف افتاد اسبش هم در خورخور خور کردن با اون همراه شد وقتی که شاه دخت اومد اون رو تکون دادن ضربه زدند و بر سرش فریاد کشیدن بیفایده بود نه اون و نه اسب بیدار نشدن. کمی بعد کالسکه رو دیدند که در فاصله دور از نظرها ناپدید شد جان بیدار شد و اسبش رو حی کرد. تا جایی که در توان داشت رو به سوی کالسکه فریاد زد بیستید بیستید اما کالسکه با سرعت پیش میرفت سرباز کوچیک یک شبانه روز در پگیش اسب روند اما هیچ وقت نتونست قدمی به کالسکه نزدیک بشه اونها از چندین روستا و شهر گذشتند بالاخره جان به دریا رسید فکر کرد که کالسکه در اونجا توقف میکنه اما کالسکه به دریا زد و خیلی راحت روی آب انگار که در خشکی هست پیش رفت به جان که اون رو تا کنار دریا به خوبی حمل کرده بود بر اثر خستگی از پادر اومد. سرباز کوچیک با اندو در ساحل نشست و به کالسکی که در افق پنهان میشد نگاه کرد. او خیلی زود رویش رو به دست آورد. در امتداد ساحل قدم زنان پیش رفت و سعی کرد قایقی پیدا کنه تا با اون دنبال شاهدوخت بره اما قایقی در کار نبود بالاخره خسته و گرسنه روی پله کلبه یک ماهیگیر نشست تا استراحت کنه. در کلبه دختری جوان در حال تعمیر تور بود اون جان رو به داخل کلبه دعوت کرد و جلوش مقداری نوشیدنی و ماهی بریان گذاشت جان با خوردنشون سر حال اومد بعد ماجرا رو برای دختر ماهگیر تعریف کرد اون بسیار زیبا بود و پوستی به سفیدی پرهای سینه مرغ دریایی داشت برای همین همسایگانش اون رو مرغ دریایی صدا می کردند. اما جان اصلا به اون توجه نشون نمیداد چون در فکر چشمان سبز شاهدخت بود. وقتی قصه را به پایان رسوند دل دختر به حالش سوخت و گفت هفته پیش وقتی داشتم مایی میگرفتم گرفتم یک دفعه تورم خیلی سنگین شد. وقتی اون رو بالا کشیدم یک گلدان مسی بزرگ دیدم که به اون سرگ بسته شده بود. اون رو به خونه آوردم و روی آتیش گذاشتم. وقتی که سرگ کمی آب شد گلان رو با کارت باز کردم و از داخلش یک ردای قرمز و کیفی با پنجاه سکه درآوردم ردای قرمز اونجاست. اون رو روی تختم انداختم. پول رو هم برای خرج عروسیم کنار گذاشتم. میتونی اونها رو برداری و به نزدیک ترین بندر بری. در اونجا کشتی هست که به سرزمین های پایین میره. وقتی پادشاه شدی میتونی پولم رو پس بدی. شاه کوچولو گفت. هر وقت پادشاه سرزمین های پایین شدم تو رو ندیمه ملکه میکنم چون به همون اندازه که زیبا هستی مهربانم هستی حالا خداحافظ مرغ دریایی سرگرم کارش شد جان خودش رو بر روی ردا انداخت اون رو به دور خودش پیچید بعد خودش رو روی علفهای خشک انداخت و قلتوند. چون فکر میکرد که تا اون موقع چیزهای عجیب براش اتفاق افتاده بودند بعد یک دفعه داد زد آه یک کاش در پایتخت سرزمینهای پایین بودم در یک لحظه سرباز کوچیک خودش رو در برابر قصری با شکوه دید چشماش رو مالید و خودش رو نشکون گرفت وقتی کاملا مطمئن شد که خواب نمیبینه به مردی که در کنار دروازه قصر داشت چپق کشید گفت من کجا هستم اون جواب داد کجا هستی مگه نمیبینی مقابل قصر پادشاه هستی کدوم پادشاه نگهبان گفت معلوم دیگه پادشاه سرزمینهای پایین بعد در حالی که میخندید فکر میکرد که اون دیوونه است آیا چیزی عجیبتر از این بود جان فردی درست کار بود و از اینکه مرغ دریایی فکر کنه که اون ردا و پول رو دزدیده سخت ناراحت بود اون در این فکر بود که چطور اونها رو هرچه زودتر به صاحبش برگردونه بعد به یادش اومد که ردا تلسمی داره که بهش کمک میکنه از جایی به جای دیگه بره برای اونکه مطمئن بشه آرزو کرد که در بهتری مسافرخانه شهر باشه. در یک چشم هم زدن اینطوری شد. اون که افسون زدگی چون این کشکی شده بود ازا سفارش داد. برای دیدن پادشاه خیلی دیر بود پس به بستر رفت. روز بعد وقتی از خواب بیدار شد تمام خونه ها پوشیده از انواع گل و پرچم بودند و تمام ناقوس‌های کلیسا به صدا در اومدن. سرباز کوچولو دلیر اونو پرسید بهش گفتند که شاه دختر زیبای پادشاه پیدا شده و قراره به افتخار ورود پیروزمندانش جشن بگیرن. پادشاه کوچولو با خودش فکر کرد: "برای منم خوبه کنار دروازه میستم تا ببینم منو میشناسه یا نه." اون برای مرتب کردن سر خیلی وقت نذاشت. همون موقع کالسکه تلایی لوتوین از کنار مسافرخونه گذشت. اون تاج طلا بر داشت و پادشاه و ملکه در دو طرفش نشسته بودند. اتفاقاً چشمش به سرباز کوچیک افتاد رنگ به رخسارش نموند و سرشو برگردوند سرباز از خودش پرسید یعنی منو نشناخت آیا چون به موقع سر قرارام حاضر نشدم عصبانیه در پی جمعیت به راه افتاد تا اینکه به قصر رسید وقتی که همراهان سلطنتی وارد قصر شدند سرباز ناگهان گفت که این اون بوده که شاه دخت رو نجات داده و میخواد با پادشاه صحبت کنه اما هر چی بیشتر حرف میزد نگهبانان بیشتر مطمئن میشدند که دیوونه است و به اون اجازه ورود ندادند سربازی کوچیک سخت خشمگین شد احساس کرد که بد نیست چپقش رو روشن کنه تا آرام بشه به گوشه گی و نشست با خودش میگفت این آخر و عاقبت زندگی یک سرباز نواز. اگر پول کافی داشتم میتونستم قیافم رو مثل بزرگان و اشراف کنم اما فکر در این باره چه فایده ای داره من فقط همون پنجاه سکی مرغ دریایی رو دارم کیف پول رو در برد تا ببینه چقدر مونده دید که همون پنجاه سکه دست نخورده باقی مونده با خودش فکر کرد مرغ دریایی حتما در شمارش سکه ها اشتباه کرده کمی پول رو خرج کرد بعد پولش رو شمرد و باز دید همون پنجاه سکه است پنج سکه برداشت و سه بار پول رو شمرد اما باز هم پنجاه سکه بود کیف رو خالی کرد و دوباره سکه‌ها رو درون ریخت وقتی اون رو باز کرد و سکه‌ها رو شمرد تعدادشون کم نشده بود بعد فکری به سرش زد. تصمیم گرفت پیش خیات و کالسکی سازه دربار بره. به خیات سفارش داد که براش ردا و جلیقی از مخمل آبی مروارید نشان بدوزه و به کالسکی سازم گفت که کالسکی طلایی مثل کالسکی شاهدخت بسازه. به اونها قول داد اگر اونها رو زود آماده کنن دو برابر پرداخت میکنه. چند روز بعد مردم شهر کالسکی رو دیدند که شش اسب سفید اون رو میکشیدن. و چهار نوکر بسیار خوش لباس به دنبال اون حرکت می کردن. داخل کالسکه جان با لباسی از مخمل آبی و دسته گل تکمهی در دست و یک روسری پیچیده به دور بازو نشسته بود. اون دو بار در شهر گردش کرد و از چپ و راست برگ مردم پول می ریخت. بار سوم از زیر پنجره های قصر گذشت و لودوین رو دید که گوشه از پرده رو کنار زده و بینون رو زیر نظر داره. روز بعد مردم فقط دربار بزرگزادی ثروتمندی حرف میزدند که در مسیر حرکتش پول پخش می کرد. دامنه این حرف ها به دربار رسید ملکه بسیار کنجکاو شده بود و میخواست شاهزاده شگفتی ساز رو ببینه. پادشاه گفت: بسیار خوب از اون بخواید که به دربار بیاد تا با هم بازی کنیم. پادشاه دستور داد و رقه ها رو اووردن. اونها سرگرم بازی شدند. شش دست بازی کردند و جان همه رو باخت. اون هر دفعه مجبور به پرداخت پنجاه سکه شد. هر بار که کیف پولش رو خالی میکرد باز همون پنجاه سکه در اون بود بار بارششان پادشاه با ترجیح گفت: شگفت انگیزه. ملکه فریاد زد: حیرت آوره. شاهدخت گفت: گیچ کننده است. سرباز کوچی گفت: ولی نجیب تر از اینکه تو زمانی مار بودی. پادشاه که از این موضوع خوشش نمیومد، حرفش را قطع کرد: هیس. جان گفت. باید حرفش رو میزدم چون من همون مردی هستم که شاهدخت رو از چنگ غولها نجات دادم اون به من قول ازدواج داده پادشاه از شاهدخت پرسید حقیقت داره لوتوین جواب داد کاملا درسته اما من به نجات دهندگی خود گفتم موقعی که با کالسکم از کنار مسافرخونه میگذرم آماده باشه و به من بپیونده من سه بار عبور کردم اما اون اونقدر غرق خواب بود که هیچکس نمیتونست اسبیدارش کنه پادشاه پرسید اسم چیه و کی هستی؟ جان گفت اسمم جانه سرباز هستم و پدرم قایقرانه پادشا گفت پس شوهر مناسبی برای دخترم نیستی اما اگر کیف پولت رو به ما بدی دخترم رو به همسری درمیارم. جان گفت اما این کیف پول مال من نیست و نمیتونم اون رو به کسی بدم شاهدخت با نگاه مکشمرگمان که دل سرباز رو برد گفت یعنی تا روز عروسیمون نمیتونی اون رو به من بدی؟ جان گفت روز عروسیمون که پادشاه گفت آغاز سال نو و شاه دخت زمزم کنان گفت یا شبیه در زیر ماه آبی اما شاه کچولو حرفشو نشنید و کیف پولش رو به اون داد. شب بعد اون به حضور پادشاه رسید تا باهاش بازی کنه اما بهش گفتند که پادشاه برای اجاره و مالیات ره نقاط مختلف کشور شده. سرباز روز بعد به دربار اومد و همون جواب رو شنید. بعد تقاضا کرد که ملکه رو ببینه اما گفتند که سردرد داره و استراحت میکنه. این وز پنج شش بار دیگه اتفاق افتاد و آن متوجه شد که اونها اون رو دست انداختن. جان به فکر فرو رفت. گفت این طرز رفتار شاهان نیست پیر رزل و یک دفعه به یاد ردای قرمز افتاد. با خودش گفت آه عجب ابلهی هستم. صد البته به کمک این ردا میتونم به اونچه دوست دارم برسم. اون شب به مقابل قصر رفت و ردای قرمز رو به دور خودش پیچید. در طبقه اول یکی از اتاقها روشن بود و جان سایه شادوخ رو روی پرده دید. گفت آرزو می کنم در اتاق شادوخ لودوین بودم. کار شادوخت این شده بود که کیف پول رو پیدر پیخالی کنه و بشماره. 850, 900, 950, 1000. این کلمه رو جان بر زبان عورد و ادامه داد شب بخیر به همه شاه دخت از جا پرید و جیغ کم صدایی از گلو برآورد. تو اینجایی؟ اینجا چی کار داری؟ فورا برو وگرنه، شاه کوچولو گفت. اومدم تو قولی رو که دادی به یادت بیارم. پس پرده آغاز سال نوه و زمان مناسی برای ازدواج ماست. رودوین بلند خندید و گفت. ازدواج ما؟ هم. یعنی اونقدر احمقی فکر میکنی دختر پادشاه سرزمینای پایین حاضر با پسر یک قایقران ازدواج کنه؟ جان گفت، پس کیف پول رو به من پس بده. شاه دخت گفت، حرفش رو هم نزن و اون رو به آرامی در جیبش گذاشت. سرباز کوچی گفت، هر طور میلته، شاهنامه آخرش خوشه. اون باستای بلند گفت، آرزو می کنم در انتهای زمین باشم. در یک چشم برهم زدن، اونها سر از آخر دنیا درآوردند جان گفت، آخیش، اونها به زیر درختی رفتند و جان گفت، هرگز چون این سفر طولانی نداشتم نظر شما چیه شاه شاهادخت متوجه شد که دیگه زمان شوخی نیست پس جوابی نداد از این پرواز سری کاملا گیج و منگ شده بود و هنوز هوش و حواس خودش رو باز نیافته بود پادشاه سرزمین پایین شخصی دقیق و جدی نبود و دخترش از اون مراقبت میکرد اون بر اثر تلسمی به مار تبدیل شده بود پیشمنی کرده بودند که سربازی کوچیک اون رو نجات خواهد داد. اون باید با اون سرباز ازدواج کنه حتی اگه اون سرباز سه بار سر قرار خودش حاضر نشه. نوشیدنی که شاهدخت در قصر به جان داده بود، دست گل و روسری معطر همه خواب‌آور بودند. حالا میدونیم که اون با جان چگونه رفتار کرده. به هر حال، حتی در این لحظات بحرانی لودوین هوش و حواسش به کارهاش بود. اون با صدای چاپلوسانه گفت: فکر میکردم که فقط یه ولگرد خیابونی هستی، حالا میبینم که تو از هر پادشاهی قوی تری. بگیر اینم کیف پولت، آیا روسری سری و دست گلم پیش توه؟ شاه کچولو از تغییر لحن اون خوشش اومد، دست در جیب بغلش کرد و اونها رو در ورده گفت، بفرما، و لودوین یکی رو در سوراخ دکمه جان و دیگری رو به دور بازوش بست، بعد گفت، حالا تو سرور و ارباب من هستی، و من همون طور که هم همسرت میشم تو از اونچه فکر می‌کردم مهربان تری وقت تام بدبختی رو نخواهی چشید چون من دوستت دارم حالا شوهر کوچیک من به چطور تونستی اینقدر سری منو به انتهای جهان بیاری سرباز باز کوچولو سرشو خاروند اون با خودش فکر کرد آیا واقعا قصد داره با من ازدواج کنه یا سعی میکنه دوباره گولم بزنه لودوین با صدای مهربان و شیرین پرسید نمیخوای بگی جان نتونست مقاومت کنه اون به خودش گفت حالا اگه راز ردا رو بهش بگم چی میشه من که اون رو بهش نمیدم و درباره‌ی خصایص ردا چیزهایی بهش گفت لودوین آهی کشید آه دل بندم. چقدر خستم فکر نمی‌کنی بهتر کمی استراحت کنیم بعد از خواب میتونیم نقشه هامون صحبت کنیم اون رو علفات الفاظ دراز کشید شاه کوچولو هم همین کارو کرد سر شروزی بازوی چاپش گذاشت همون بازویی که روسری به اون بسته شده بود و خیلی زود به خوابی عمیق فرو رفت. لودوین که یک چشمش باز بود و اون رو زیر نظر گرفته بود همین که صدای خور و جان رو شنید بندهای ردار رو باز کرد اون رو از زیر جان بیرون کشید و به دور خودش پیچید. بعد کیف پول رو از جیب جان در برد و در جیب خودش گذاشت و گفت آرزو میکنم به اتاق خودم برگردم و در یک آن چونین شد. آیا جان موقعی که بیدار شد اون هم 24 ساعت بعد و متوجه شد که کیف پول و رداقی بشون زده و خبری از شاه دوخ نیست نباید احساس حماقت می اون چنگ در موهاش میزد و اونها رو می و مشت بر سینه میکوبید. بعد دستگر رو زیر پاهاش له کرد و روسری دوشیزه دوشیزی خیانتکار رو ریز ریز کرد. سخت گرست نشده بود و چیزی برای خوردن نداشت. بعد به فکر تمامی چیزهای شگفتنگیزی افتاد که مادر بزرگش در زمان کودکیش تعریف کرده بود. اما هیچ کدوم از این قصه ها حالا به دردش نمیخورد. با نومیدی تمام نگاهی به بالا و نگاهی به درخت که زیرش خوابیده بود انداخت. درخت آلوگ پرواری بود و شاخه هاش پر از میوه های زرد مثل طلا بود. به خودش گفت حالا وقت حمله به این آلوهاست. زمان جنگ به درد میخورند. از درخت بالا رفت و با ولع شروع به خوردن آلوها کرد. اما هنوز چند تایی نخورده بود که در نهایت ترس احساس کرد چیزی روی سرش درمیاد. دستش رو بالا برد و متوجه شد که دو شاخ روی سرش در اومده. از درخت پایین پرید و به سمت جویباری که در همون نزدیکی روان بود دوید. افسوس. دیگه چارهی نمونده بود. دو شاخه کوچیک خوشگل که واقعا به کله یک بز میومد روی سرش در اومده بود اعتماد به نفسش رو از دست داده بود با خودش گفت انگار درد دردسرهام تمامی نداره زنی به من کلک زده و حالا دیو هم خودش رو قاطی کارای اون کرد و شاخاش رو به من قرض داده اگر با این قیافه خوشکل سر به این جهان پهناور بگذارم جه ها که نمیشه هنوز گرس نش بود و این بلا هم بر سرش اومده بود دوباره قرص و محکم از درختی دیگه بالا رفت و دو آلوی سبز چید هنوز اونها رو کاملا قورت نداده بود که دو شاخه روی سرش ناپدید شدن. سرباز کوچیک افسون زده شد. مات و مبهوت مونده بود و به این نتیجه رسید که اصلا خوب نیز خیلی زود ناامید بشه. بعد از خوردن میده یک دفعه فکری به سرش زد. با خودش فکر کرد شاید این آلوهای کوچیک قشنگ برای باز پس گرفتن کیف پول ردا و مهمتر از همه خالی کردن قلبم از عشق شادخت نابکار به من کمک کنن. اون چشمانی مثل چشمان آهو داره. بس بد نیست هم داشته باشه. اگر کاری کنم که یک جفت شاخ روی سرش در بیاد، حاضرم هر چی دارم بدم. اما دیگه اون رو به همسری نمی گیرم. ظاهر شاهدختی شاخدار خیلی تماشاییه. اون با ترکه های تازه و نوره سبدی بافت و انواع آلو رو با دقت درون چید. بعد راه افتاد و روزها و روزها سفر کرد غذاش تمشکهای کنار راه بود جونوران وحشی و آدمخواران جانش را تهدید میکردند اما اون از چیزی نمیترسید و فقط مواظب آلوها بود تا له نشم چنین هم نشد سرانجام به کشوری متمدن رسید با فروش مقداری جواهر که در شب فرار با خودش برداشته بود سواره کشتی شد و به سرزمینهای پایین رفت بعد از یک سال و یک روز به پایتخت های پایین رسید. روز بعد به صورتش ریش بست. لباس یک تاجر خورما رو پوشید، میز کوچکی برداشت و اون رو کنار در کلیسا قرار داد. آلوهای زرد رو با دقت روی پارچه سفید تمیزی چید، به طوری که هر کس به اونها نگاه میکرد، ذره‌ای در تازگیشون شک نمیکرد. وقتی شاهدخت رو دید که از کلیسا خارج میشه، با صدایی بلند فریاد کشید: آلوهای عالی! آلوهای خوشمزه شاه دخت برسید چند میفروشی؟ جان گفت دونهی پنجاه سکه شاه گفت پنجاه سکه؟ مگه چه توفهی هستند باعث هوشیاری میشن یا زیبایی رو زیاد میکنن؟ جان گفت شاه زیبا اونها چیزی رو که از هر نظر کامله کاملتر نمیکنن اما میتونن چیزی اضافه کنن بله اگه سیوی رو بالا بندازی تا موقعی که پایین بیفته هزار چرخ میزنه این همه ماهای طولانی که جان در زیر این آسمان کبود سرگردان بود چندان هم بیفایده نبود اون با چرب زبانی تونست لودوین رو خام خودش کنه شاه دخت لبخندزنان پرسید حالا چی اضافه میکنن؟ جان گفت شاه سیبا. وقتی اونها رو چشیدید خواهید دید واقعا قافلگیر میشید کنجکاوی لودوین به اوج رسید کیف پولش رو در سرکی سر رو شل کرد و به تعداد آلوهایی که در سبد بود سکه بیرون ریخت به طوری که کوپه ای سکه درست شد سرباز کوچیک خیلی وسوسه شد که کیف رو بقاپه و لودوین رو دوست معرفی کنه اما خودش رو نگه داشت و واکنشی نشون نداد اون همه آلوها رو فروخت بساتش رو جمع کرد تغییر قیافه داد مسافرخونه محل اقامتش رو عوض کرد و منتظر موند تا ببینه چه پیش میاد به محض اینکه که شادخت به قصر رسید فریاد زد، حالا ببینیم که آیا این آلوهای خوشمزه چیزی به زیبایی من اضافه میکنند یا نه و رداش رو از رویشونهاش پایین انداخت و دو تا آلو برداشت و نوش جان کرد. حالا بخت و حراس شادخت رو تجسم کنید وقتی که احساس کرد چیزی در دو طرف جلوی کلش سردر میاره. اون به سمت آینه دوید و با دیدن خودش جیقی دردناک از پای دل کشید شاخ پس شاخ به من اضافه شده فوراً آلو فروش رو پیدا کنید و بیارید اینجا باید دماغ و گوشهاش رو ببرم باید زنده زنده پوستش رو بکنم باید اون رو در آتیش بندازم و جون به سرش کنم باید خاکسترش رو به باد بسپارم آه من از خجارت و افسردگی میمیرم زنان خدمتکارش با شنیدن صدای جیغ اون به سمتش دویدند و سعی کردند که شاخها رو از سه بکنند اما تلاششون بیفایده بود و فقط باعث سردرد شدید اون شدند پادشا پیک فرستاد و اونها در همه جا جار زدند که اگه کسی بتونه شادخت رو از آرایش عجیبی که پیدا کرده رها کنه اون رو به همسریش در خواهد آورد تمامی پزشکان و جادوگران و جراحانه سرزمینهای پایین و کشورهای همسایه به دربار هجوم آوردند و هر یک با روش خودش سعی کرد شاهزاده رو درمان کنه اما تلاش همه اونها بیهوده بود و شاهها همچنان بر سر شادخت جا خوش کرده بودند کس نتونست از رنج و عذاب اون کم کنه پادشاه مجبور شد دوباره پکهایی بفرستند تا جار بزنند کس درد شادخت رو چاره کنه اون رو به همسرش درمیاره و اگر نتونه از نزدیکترین درخت به دار آویخته میشه پاداش درمان شاهدخت واقعا بزرگ بود و موفقیت در این کار باعث میشد که جلوی سیل خواستگاران جور با جور گرفته بشه چون اون اونسال سرزمین سرزمینهای پایین از جنازه که مردان بارور شدند و کشاورزان محصولی حسابی برداشت کردند پادشاها فرمان داده بود که در تمامی نواحی سرزمینهای پایین به جستجوی آلوفروش بگردند اما با وجود مرارت های زیاد اون رو پیدا نکردند وقتی که سرباز کوچیک متوجه شد که صبر اونها داره به پایان میرسه آب مرغوب ترین آلوها رو گرفت و در شیشه ای ریخت لباس پزشکان رو بر کرد کلاه گیس بر سر گذاشت عینک زد و به حضور پادشاه سرزمین‌های پایین رسید اون خودش رو پزشکی مشهور معرفی کرد و گفت که از سرزمین‌های دوردست اومده و قول داد که شاه رو درمان کنه به شرط اون که خودش و اون تنها باشند. پادشاه گفت اینم دیوونه دیگه که دلش میخواد به دار آویخته بشه. بسیار خوب. هر کاری میگه انجام بدید. خودکرده رو تدبیر نیست. به محض اینکه سربازی کوچیک رو پیش شاه دوخت اون چند قطره از اون ماگر رو در لیوان ریخت. همین که لبای شاه به آب میوه آغشته شد نوک شاهخوان ناپدید شد. مرد پزشک نما گفت اونها رو میشه کاملا ناپدید کرد. بالاخره داروی پیدا شد که اونها رو از بین ببره. البته این کار فقط زمانی امکان پذیره که روح انسانها پاک و بیالایش باشه. آیا مطمئنی که مرتکب گناهی نشدی؟ به خودت بیا و در این مورد فکر کن. لودوین نیازی نمیدید در این مورد زیاد فکر کنه. اما احساس میکرد بین حس تحقیرآمیز اعتراف و علاقش برای از بین رفتن شاخ ها مردد مونده. بلاخره در حالی که از شرم به زمین نگاه میکرد گفت من از سربازی کوچیک کیسه چرمی پولش رو دزدیدم. جام گفت اون رو به من بده. اگه اون رو به من ندی درمان بی اثر میشه. برای لودوین خیلی دردناک بود که کیف پول رو بده. اما به یاد آورد که ثروت زمانی براش مفیده که شاخ نداشته باشه. آهی کشید و کیف پول رو به پزشک داد. اون هم مقدار بیشتری از اون ماگر رو در لیوان ریخت. وقتی که شاهدخت از اون نوشید، متوجه شد که اندازی شاخها به نصف رسیده. سرباز کوچی گفت، راستش رو بخوای، باید گناه کوچیک که دیگه هم مرتکب شده باشی. آیا از اون سرباز به جز کیف پولش چیز دیگه ندزدیدی ندازدیدی؟ شاهدخت گفت، چرا؟ رداش رو هم دزدیدم. جان گفت، اون رو هم به من پس بده. بفرمایید، این بار؟ لودوین با خودش فکر کرد به محض اینکه شاه ها ناپدید بشن خدمتکارانم رو صدا میزنم تا بیان کیف و ردا رو از پزشک به زور بگیرن اون از این فکر خیلی سر حال اومده بود اما پزشک نما فوراً ردا رو به دور خودش پیچید کلاهگیس و اینک رو دور انداخت و چهره واقعی خودش رو به شاهدخت خیانتکار نشون داد شاهدخت مات و مبهوت و هراسان سر جاش خوشکش زده بود جان گفت باید میگذاشتم تا پایان عمرت شاخدار باقی بمونی اما چون آدم خوبی هستم و زمانی هم دوستت داشتم برای درمانت به اینجا اومدم تازه تو موجودی دیو صفت هستی و نیازی به شاخ نداری جان آرزو کرد که در ی مرغ دریایی باشه در اون موقع مرق دریایی کنار پنجره نشسته بود و تور ماهگی رو تعمیر میکرد هرازگاهی چشمانش تا دوردستهای دریارو نگاه میکرد انگار که منتظر کسی باشه بالاخره سرباز کوچیک به اونجا رسید و با ورودش سر و صدایی راه انداخت دختر نگاهی بهش کرد و از شرم سرخ شد اون گفت بالاخره اومدی؟ چطور اومدی؟ و به آرامه اضافه کرد با شاه ازدواج کردی؟ جان تمام ماجره ها رو تعریف کرد و بعد از پایان حرفاش کیف پول و ردار رو بهش پس داد دوشیزه گفت با اینها چی کار کنم؟ تو به من ثابت کردی که مال و ثروت خوشبختی نمیاره. سرباز کوچیک جواب داد به راستی که خوشبختی در عمل و عشق زن درستکار نوفت است. اون تازه متوجه شد که مرغ دریایی چه چشمان زیبایی داره. بعد گفت مرغ دریایی عزیز آیا منو به شوهری قبول میکنی؟ و دستش رو به سمت اون دراز کرد. دوشیزه یه ماه گیر جواب داد بله میپذیرم. از شرم کاملا سرخ شده بود بعد گفت اما به یک شرط ما باید کیف پول ردا رو در ظرف مسی قرار بدیم و به دریا بندازیم و این کار رو هم کردند امیدوارم از این قصه زیبا لذت برده باشید روز و روزگار خوش سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها